بسم الله الرحمن الرحيم الثالي موتل نوع زوم المعتل العين موتل العين اون الفالش حرف اللي باش ويقال له الأجوف وزو الثلاثة أيضا بموتل العين أجوف كفت مش شو المشكلة در جوفه در وسط كم وزو الثلاثة أيضا بيش زو الثلاثة هم جان شرى لكون معضيه على ثلاثة أحرف اذا اخبرت عن نفسك چون ماضیش سه حرف داره زمانی که در متکلم زمانی که خودت سخن بگویی، مانند قول تو، بعت و صمت سه حرف باقی مونده فالمجرد الثلاثي تقلب عينه فی الماضي الفا تبا كان وا با او یا میگه مجرد ثلاثی این الفل در ماضی تبدیل به الف میشه فرق ایده دارد چه واوی باشه چیایی چرا یا تبدیل به الف میگردن لی تحرکه ما و انفتاحه ما قبله ما به دلیل متحرک بودنشون و فتح دار بودن ما قبلشون این قاعده هست حرف الله واوویا اگر متحرک باشن ما قبلشون فتحه داشته باشد تبدیل به علف می شود البته در این کتاب نه است ولی در تکمله آورده است که اجوف از این جهت بر چار نه است اونی که در اصل واف بوده ولی واف تبدیل به علف شده مانند قبلک شده قاله اونی که در اصل یا بوده یا تبدیل به علف شده مانند باعه و اونی که وابش ثابت مونده مانند عو و اونی که یا بوده و یا همسر جاش مونده تبدیل به علف نشده اینو در تکمله آورده است جهت توضیح پس میگه در این کتاب میگه واب و یا متحرک ما قبل مفتو تبدیل به علف میشند مانند سانه که در عصبوده سوانه باعه که در عصبوده بیعه مثلاً قول ماستره ماس، اگه بخام مازي درس كنين در اسمشه قاباله ولی بر اساس قاعده واو وياه متحرك مقام مفتوه تبدل بألف مشه مش قاباله این در پنج سيغه ابتدا این حالت بشمير سانة سانة سانو سانت سانتا اما فإن اتصل به ضمير المتكلم او المخاطب او جمع المعنثل غائبه زماني كه به فعل مازیز زمیر متکلم مانند قلتو قلنه متکلم وحده باشه چی مال غیر فرقی نداره یا زمیر مخاطب بو اصل بشه قلت قلتو ما قلتم قلتی قلتو ما قلتون نه تا زمیر مخاطب داریم یا زمیر جمع ماننس غایب نون نه میگه زمانی که این زمیر ها اصل بشه به عبارت ساده تر از شش به بعد نقل فعلا من الواوی الى فعوله فعل مازیک که بر وزن فعله هست و واوی هست از سیغه شیش به بعد بر وزن فعوله میشه و من الیایی الى, الى فعلا و اگر بر وزن فعلا بود از سیغه شش به بعد یا به عبارت دیگر با متصل بودن زمائیر که نام بردیم بر وزن فعله میره از سیغه به بعد وزنش عوض میشه. بر وزن فعیله میشه یایی و بر وزن فعوله میشه واوی. دلالت علیهما ما. تا در واوی زمه دلالت بر این کند که واو هست شده از سیغه شیشت بعد. و کسر دلالت بر این کند که یایی هست شده. مثلا در قله قالنا قال نه میگیم قول نه این زمه به ما میگه در این واو هست شده. در باعه میشه بیعنه از به بعد کسره به ما میگه که یا حس شده خب گفته بود بروادن فعوله و فعیله میره چرا زمه در ابتدا آوردیم بعدش در ادامه بحث میگه و سپس زمه از این الفل به ما قبل داده میشه به فعالفل داده میشه و کسره هم از این الفل به ما قبلش داده میشه ولم يغير فعلى ولا فعلى إذا كان اصليين اگر اگر و اگر فعل بر وزن فعله يا فعله باشه در اصل دیگه تغییری رخ ونقلة و نقلت إلى و کسره به الفاء ذمه و کسره فعل داده میشه گفت که فع قوال قال بر وزن فعله است ولی اصیغه شش به بعد و زمه به فاول فیل داده میشه میشه قل نه قل تا تو ما قلتو و در هم اگر بر وزن فعله باشه مانند قاله مانند باقه از سیغ شیش بعد بر وزن فعله میشه و کسره به فاول فیل داده میشه میشه بیع نه بیعت بیعتو ما بیعتم بیعت بیعتو ما بیعتون کتب دیگر این مسئله رو ساده تر بحث کردن. مثلا تکمله یا سرف میر سرف میر میگه اگر مزاره مازی بر وزن یفعولو بود در مازی از سیغ شیش به بعد فاولفل رو زمه میدیم قال یکولو میبینیم که مزاره قاله بر وزن یفعولو هست پس از سیغ شیش به بعد فاولفل رو زمه میدیم قال قال قالو قالت قالت قل نا قلت, قلت قلت ما قلتم تا آخر اما اگر بر وزن یفعلو یا یفعلو بود دیگه در ماضی فاول فیل را از سیغ 6 به بعد کسره میدیم مالند باع یا او مزارش بر وزن یفعلو پس از سیغ شیش به بعد باع از جمع موننس به بعد کسره می گیره فاول فیلش بیع نه بیعتما بیعتما بعتم بیعتما بیعتما یا اگر بر وزن یفعلو باشد همچنین مالند خاف یا خاف خافه خافه خافو خافت خافه خافته خفت خفته خفتمه خفتم پس تعین حرکت فاولفل بر اساس کتاب سرفمیر ساده تر هست به مزاره می نگریم اگر مزاره بر وزن یفئلو بود از جمع موننس به بعد فاولفل رو زمه می دهیم و اگر بر وزن یفئلو یا یفئلو بود فاولفل رو کسر می دهیم وحوظفة العين اي انو الفيل السيغيشيش بباد حاس بشي قال قالوا قا قال قالو قالت قالت قالت قالت قال قالوا قالت قالتها قال ندر اسل ولي ديجا حاس بشي مشي قالنا وحركات من تأخيراتك بشي ما قفتن روش مياد كميشي قول الله الالتقاء الساكنه تشرا حرفه اللحاس بشي به خاطر الاعتقای ساکنین هر جا دو ساکن پیش اومد حرف فعلله هست میشه اینیه قاد کلی است. قال نه هم اللف ساکره هم لام. پس الف که حرف الله هست میشه. مانند سان و سان سال و س سانانهتا سون س تا سون توما ستون ستی سون توما سونتون نه سونتو سنت و در هم میگین بابا و باع باتا به تو بهتون به به تو ما بهتون ن و بات. این بود در معلوم و اذا بنایته للمفعول زمانی که مجهولش گردانی یا در ساخت مجهول کسر تلفاع من الجمی فاولفل رو در تمام یعنی چه واوی چی, چی هایی چونی که برواز فعله است چونی که برواز فعله است چونی که برواز فعله است. در همه فاولفل رو کسره میدهیم قاله اصل در سالم ها خوندیم بر برواز فعیله میشه زوری با اینجا هم میشه قو وی له میگه کسره واف سنگینی میکنه همچنین بر یا به ما قبل داده میشه به چه داده میشه و وی ساکن ما قبل مکسور تبدیل بیا میشه میشه قیله بیعه که خودش در اصل یا هست بیع این خیلی ساده هست کلا مجهول اجوف به همین شکل سینا سیما قیلا بی علا آخر و علاه بالنقل به نقل و القل که در مجهول رخ هم نقل هم قل این حرکت حرکت از و الفل به ما قبل بعد میشه کسره زوری کسره از زین و الفل در اجوف البته زوری که کسالمه بسند در قاله حرکت به فاول فعل داده دا میشه کسره و حرف ال هم تبدیل میشه پس اعلالی که در مجموع رخ میده یکی نقل یعنی حرکت نقل میشه و یکی قلبه که هر فعله تبدیل بیا میشه و بیه پس در اجوه فبابی ما دوته اعلال داریم اعلال نقل و قلب حرکت از این اينو الفعل از که کسره هست به فاول فعل داده دا دا میشه و واف تبدیل به یا میشه دو تا اعلان شدن یکی نقل یکی قلب ولی دریایی فقط نقل رخ میده بو یعه کسر به از این الفل به فالفل داده میشه تمام شد رفت بو یعه میشه بیع این شد از اعلانی که قوائدی که در اجوفه در ماضی مجهول اجوف پیش میاد و تقول في المضارع در مضارع اجوف چی میگی؟ سانه یسونو باعه یبیو اینجا نقل رخ داده و اعلالهما بالنقل اعلال این دو تا بالنقل هست یعنی چی؟ یعنی حرکت به ما قبل داده شده کتاب صرف میگه اگر ما ساکنو صحيح باشي حرف ما, قلي... ما قبل حركت بما قبل داده مشي از اين و در اسبو ده يسونو يسونو يفعولو يبيو هم بروزن يفئلو يب يعو وله حركت از واب ويا بما قبل داده شده كي خانده مشي يسونوو يبيعو و اعلالهما بالنقل اعلال اندوتا نقل حس يعني حركت از این الفعل به ما قبل بفاعل فعل داده شده و یا خافو و یا در یا و یا هابو هم اعلال رخ داده یا خافو از مصدر خوف گرفته شده یخ وفو یخ وفو اینجا هم در یخ وفو حرکت از واو به ماقبل داده شده است و متحرکه و در اصل متحرکه ما قبل مفتوح تبدل بالف مشه لأن قبلًا لم أخويني كي واب ويا متحرك ما قبل مفتوح تبدل بيا مشه در يخوفو واب در اسر متحرك بوده هركت شما بوردين بما قبل داده حالا واب در اسر متحرك الان ما قبل مفتوح تبدل ب الإله مشه يخوفو مشه یخافو يحوبو يحابو وعلاله همه بالنقل والقلب إلا در یخافو و یه هابو هست هم نقل هم قلب یخ وفو فتحه به ما قبل داده شده و واف تبدیله به علف شده دخول الجازمی الالعجوف بحث بعدی که در این رابطه میاره میگه زمانی که جازمی برعجوف داخل بیاد چه, چه مسائل رخ میده چه اعلال هایی رخ میده اعلال تغییر رو میگن حالا چه به حصف باشه چ حرف حذف بشه مثلا قالنه میشه قل نه چه نقل بشه که بهش میگن اعلال به نقل حرفي حرفی تبديل به حرف دیگه بشه مانند قوله که میشه قال اعلال به سه حالت رخ میده در حرف عله به سه حالت یا حذف یا نقل یا حذف یا نقل یا قلب خب حالا دخول جازم بر اجوف وایت الجازم على المضارع جازم بر مضارع داخل میشه فتسقط العين عين الفيل ساقط مشي يقولوا أجل لم روش بيريم مشي لم يقول هم لام مساكن هم واضح حرف الله اسمه مشي مشي لم يقول خودش ميجا فتسقط العين عينه اذا سكن مع بعدها عين الفيل ساقيت مشي زمانك بعد الزين الفيل سا ساكن باشي لم يقول دري يقول ياك أعلامت المزارع قاف والفاء والف والف لام لام الفيل در يقول ما بعد عين الفل كي يقول يعني بعد الواو شلون ساكنه واضح حسب فتسقط العين اذا اذا سكن مع بعدها عين الفيل حسب حسب مشه زماني كي بعدش ساكن باشه يخاف مش اللم يخاف يبيع مش اللم يبيع بس زمانيك اينو الفيل ساكن باشد زمانيك الامو الفيل ساكن باشد اينو الفيل, الفيل حسو يعني ضمانا دل لم يبيع كم يشاد لم يبيع لم يخاف كم يشاد لم يخاف لم یقول که شود لم قول. این زمانی است که لام ساکن داشته باشه. در صيغه های بعدی که ساکن نداره لام الف عین حس نمیشه وتثبت اذا تحرک و عین الفل ساکت میماند و اه... و عین الفیل میماند زمانی که حرف بعدش حرکت داشته باشد مانند لم یسون در... در اسبود لم یسون چون نون ساکن داره واف حس شده. اما در لم یسونا دیگه واف حس نمیشه چرا؟ چون نون حرکت داره. لم یسونو هم تونين. لم تسون دوباره حس میشه. لم تسونا حس نمیشه. لم نه لم تسون، لم تسونا، لم تسونو، لم تسونی، لم تسونا، لم, لم, لم تسونه، لم اسون لم نسون. در پنج صیغه حس میشه. مفرد مذکر غائب مفرد مؤنث غایب، مفرد مذکر حاضر. متکلم وحده متکلم ملغه زمانی در سیغه های احادی یعنی در اون سیغه هایی که زمیر نچسبیده زمانی که جازم بیاد حرف الله حسب می‌گردد و ها قیاس قیاسو لم یبع لم میگه لم یبع همچونین است لم یبع لم یبع لم یبع لم لم تبع لم تبع لم یبعن لم تبع لم تبعا لم تبعو لم تبعی لم تبعا لم تبع نه لم, لم, لم, لم, لم ابع لم نبع در همون, در همون ساخته هایی که نام بردیم در همون هایی که نام بردیم یعنی در پنج سیغهی که نام بردیم فقط حصف میده و جاهای دیگه رخ نمیده الامر من الاج و دخول نون تأکید علیه امر اجوف و داخل شدن نون تأکید برای و قص علیه الامر و قیاس بگیر بر مزارع امر یعنی در همون سیغه هایی در مزارع با اومدن لامه حرف الله هست می شد در امر هم چنین هست در سیغه که زمیر ندارند حرف الله هست میشه. مانند سون چون نون ساکنه در اصل بوده سون واف شده اما اونای اونجا هایی که انو الفل حرکت داره واف نشده سون سونا سولو سونی سونا سن پس در امر حاضر فقط در یک صيغه یعنی مفرد مذکر حاضر این حس رخ میده در بقیه صيغا نه قل قولا قولو قولی قولا قل سوما سوما سومو سومی سوما نه. و به تأکید زمانی که نون تأکید ثقيله بیاد واو برمیگرده سن میشه سو نه. سو نه. چرا واو برمیگرده چون اینجا نون حرکت داره سو نه. علتی که واو رو حذف میکرد سکون نون بود سکون لام بود در نون تأکید چون نونه لام در حرکت میگیره لذا حرف ایل برمیگرده می‌کرده. قول میشه قولن نه، سوم میشه سومن نه، سونن نه، سونان نه، سونون نه، سونن نه، سونان نه، سونان نه. به این شکل. حرف اللی حرف اللی حست شده با نون تأکید سقیله دوباره بازگشت بع بیعا بیعو بیعی بیعا بعنا در بع یا حست شده در خف الف حست شده خاف در اس بوده ولی چون اعلام ساکن هست الف حست شده خف خافا خافو خافی خافا. خفنه. اگر نون تحکید بیاریم بیعن نه خف همیشه خافن نه خافن نه خافن نه الی آخر این شد از امر با نون تحکید سقیله مزید و ثلاثی الاجوف حالا رسیدیم به سلاسی مزید در اجوف های اجوفی در ثلاثی مزیدشون و مزید ثلاثی لا یعتل منه الا اربعه ابنیات میگه در ثلاثی مزید ا رخ نمیده مگر در چهار ساخت یکی بنای افعال مانند عجابه این عجابه واوی هست جواب اگر بر وزن افعالش ببریم در اسم شاید اجوابه اجوابه حرکت از واف به ما قبل داده میشه واف در اسم متحرک الان ماقل مفتوح تبدیل به الف میشه میشه اجابه یوج ویبو در یوج ویبو کسره رو کسر واف سنگینی میکنه به ما قبل میدیم یوج وی بو کسر رو که به ما قبل ویدیم واف ساکن میشه ما قبلش کسر تبدیل بیا میشه قبلا همین قاعده رو گفتیم واب ساکن ما قبل مکسور تبدیل بیا میشه یا ساکن ما قبل مضموم تبدیل به واب میشه این قاعده رو تو سرها باید داشته باشیم پس اه اه موتل در ادوف در سلاسیه مزید در چار بنا رخ میده یکی در باب افعال اجوابه که میشه عجابه و میشه یجیبه اجابتا در مصدرش هم حرف عله حس میگرده و در آخرش تا باب بعدی که درش اعلال رخ میده استفعال هست استقامه اصلش بوده قوامه استقوامه و همون علتی که در اقامه ذکر کردیم اینجا هم شده استقامه استقو حرکت از واو رفته به ماقبل واو در اسم متحرک ماقبل مفتوح تبدیل به شد تبدیل به میشه واو متحرك واو در اسم متحرك ماقبل تبدیل به میشه میشه استقامه یستقو مو اینجا هم واب از کسر از واو به ماقبل داده میشه به علت سنگینی و باب ساکن ماک مشهور تبدیل بیا میشه میشه از تقیم استقامتا در این باب افعال و استفعال در جواف حرف الله هست میشه و در آخرش در مصدر. منظورم تام یاد استقامتا میشه. انقاده به انحی که باب انفعال هست در سب بوده ان قوده باز هم بهمون دلیلی که در تو فعل قبلی ذکر کردم شده انقاده انفع علی ينفئلو یعنی قویدو یعنی قویدو واو متحرک موقع مفتوح تبدیل به الف میشه میشه ينقادو چرا اینجا تبدیل بیان شد واو قطرین که اینجا حرکت قبلش فتح است. انقاده ی انقاد و انقیادن. اختاره در اصل بوده اختیاره یا متحرک متحرك مقام مفتوح تبدیل به علف میشه اختاره یاختیارو که یا ای متك یا یا متحرک ماقم مفتو تبدیل به علف میشه یختارو اختیارن چرا اینجا تبدیل بیا نشد خاطر که اینجا ما قبلش فتحه داره در یستقیمو که باب استفعال باشد و در یوجیبو حرکت از واب موقعی که به ما قبل داده میشد کسره میشد اونجا ساکن بود لذا واب تبدیل بیا شد. ولی در این دوتا نه در این دوتا ما قبل واب فتحه هست لظهر في اللي تبديله ب الف میشه پس در این چهار تا بنا یعنی افعال استفعال انفعال و افتعال اعلال رخ میده حرف اله در باب افعال و در باب استفعال در ماضی تبدیل به الف میشه مانند عجابه استقامه و در مزاره تبدیل به یا میشه یجيبو یستقیمو و در انفعال و افتعال حرف ایل تبدیل به الف میشه هم در ماضی و هم در مزاره انقاده ی اختار اختاره ی اختارو خیلی ساده و اذا بنایت حال زمانی که میگه اینا رو مجهول گردانی یعنی این بابها رو اون موقع عجابه میشه اجیبه عجابه اجیبه چرا؟ چون ما قبل حرف عله کسره هست و زمانی که کسره باشه در مازی ما قبل حرف عله کسره هست در اصل هست اوج وی به واو کسره داره کسره سنگیره به ما قبلش میدیم حالا ما قبل وو کسره شده خودش ساکن واب ساکن ما قبل مکسور تبدیل بیان میشه میشه اجیبه ولی در مزاره بر وزن یفعالو هست یوج وابو یوج وابو حرکت تو به ما قبلش میدیم واوه در اصل متحرک ما قبل مفتو تبدیل بعلف میشه مجهولش میشه یجابو اجیبه یجابو این ها قیاسی هستند یکی رو یاد بگیریم همه اینجوری هستند در ما با استفال همچنین هست استقیبه یستقام با همون ادلی که الان انقاده معلومش هست مجهولش میشه انقیده در مزاره چون بر وزن ما قبل آخرش فتحه داره تبدیل الف میشه یونقادو اختیره در ماضی ماضی مجهول چون ماضی مجهول حرف ما قبل آخر کسره میگیرد ولی در مزاره فتحه میگیرد یختار منظورم طریقه ساخت مجهول در صحیحو اگر بریم مروری بکنیم ما قبل آخر در ماضی میشه کسره دارد ولی در مزاره فتحه دارد به این خاطر است که در مجهولها ماضی تبدیل بیار میشه ولی مزارد حرف عله تبدیل به علف میشه به خاطر همین حرکت هست به خاطر همین حرکت هست اجیبه یجابو استقیمه یستقامو انقیده یونقادو اختیره یختارو والامر منها امرش چی میشه؟ امره اجابه یجیبو از تو که امر درست کنیم باب افعال همیشه همزش اصلی هست لذا فتحه داره میشه عجب همزه باب افعال برخلاف باب‌های دیگر امرهای دیگر باب‌ها همزه قطع هست اکرمه در اصل میشه یو اکرمو تو اکرمو عجاب اینجا تو ا جیبون تو رو که برداریم میشه عجیب عجیب چون با ساکن هست یا ساکن هست حرف عله هست میگرده میشه عجیب در سیغه در سیغهی که لام سکون دارد مثل قول سیغه بعدی یا حس نمیشه حرف عله حس نمیشه عجیب عجیبا عجیبو عجیبی عجیبا عجیب نه تستقیمو در غیران چونین هست ولی همزه همزه وصل هست استقیم میشه در اصل فعل عمرش که یا حس میشه به علتی التقای ساکنه استقیم استقیما استقیمو استقیمی استقیم استقیمنا انقاد یعنی انقاد از تنقادو حاضرش درست میکنیم میشه انقاد که الف هس میشه به علتی التقای ساکنه میشه انقاد انقادا انقادو انقادی انقادا انقادره اختار اختارا الى اخر ويا صحو نحو قفتو درون چارتا ابنية يعني افعال استفعال انفعال و افتعال اعلال روخ مده ويا صحو نحو باعلال روخ نمیده وصحیح هستند قولة باب التفئیل قولة باب مفاعلة تقولة باب تفاعل، تقاول باب التفاول پس این باب ها چه هستند؟ صحیح هستند در این ها اعلال روخ نمیده قول قول قول دیگه موافت هم دیل به الیف نمیشه قاول تقاول تقاول زینا تزینا صایر تصایر اسود ده ابيانده اسود این باب هایی که اینجا آورده درشون ایلالی رخ نمیده و وکذا صائر تصاريفها صائر تصریفایشون یعنی اسم فاعل اسم مفعول امر اینجا دیگه ایلالی رخ نمیده اما اسم فاعل اسم الفاعل و المفعول من الاجوف اسم فاعل و مفعول از اجوه چه طوری هست و چه ایلالتی روخ میده و اسم الفائل من الثلاثی المجردی میگه اسم فائل در ثلاثی مجرد یعتل لو اینوهو بالحمزه این الفیلش تبدیل به همزه میشه اعلالی که در رخ میده اعلال قلب هست حمزه تبدیل به هر تبدیل و همزه میشه در اسم فائل از یسومو در اسب باید بگیم صاویم ولی میشه صایم در یسونو صافن ولي مشه صائن در يابي عو بايع ولي مشه بايع اين شد از اولي که در سلاسي مجردش رخ داد. اما در مزید و من المزيد في يعطل به معطل به هم مضاره چون ما در مزيد في اسم فایلو از فعل مزاره درست می کنیم. همون اعلالاتی که در مزار رخ میده مسلما در اسم فاعلش رخ میده مثلا عجابه یوجیب در اصل بود یوجیب حرکت نقل شد به ما قبل و واو تبدیل بیا شد لذا در اسم فاعل همون اعلالات رخ داده مجیب استقام یستقیمو در اصل بود شده یستقیم لذا در اسم فاعل هم که از فعل مضارع درست میشه همون علال درش روخنده میشه مستقیم یعنی قادوم منقاد و یختاروم شه مختار و اسم مفعول این شد اسم فاعل در مجرد و مزید توضیح داد و اسم مفعول من الثلاثی المجرد اسم مفعول در ثلاثی مجرد یو اعطالو به نقل و درش عیلاله نقل و حفظ روح میده. در اصل هست مثلا یسوعو اسم مفولش میشه مس وون دو تا واو دیگه. یکی واو خوده. کلمه هست یکی واو اسم مفول. مثل یسوعو مز روب واو اسم مفول توش اضافه میکنن. در یصولو یک واو که خود کلمه داره. یک واو دیگری اسم مفولش است میشه مس وون ولی اینجا حرکت به ما قبل داده میشه. ما قبل و و, و یکی از واب ها حس میگردد. مسبول میشه مسود. مبیوع میشه مبیع. ولی محضوع. حالا این کدوم واب که هست شده در اسم مفعول از مسول و مبیع. از یقولو میشه مقول از یبیعو میشه مَبِیع کدوم واو هست شده این اختلاف اختلافی در نزد نحوی ها والمحذوف منه واو مفعول اند سیبوه سیبوه میگه اونی که حذف شده واو مفعول هست و عین الفاعل اند اب حسن الاخفش اما اخفش میگه اونی که حذف شده عین هست و بنویم بنو یا بتون یا بنویم یا رو حسف نمیکنن دریایی ای ا او اسم مفعول درست کنیم میشه مبیوع دیگه یار حس نمیکنن تمیم میگن اسم مفعول یابی او مبیعوع هست ولی بقیه حسش میکنن میگن واب رو در یا ای نمیکنن و امر دریایی هست نمی کردن بنی تمیم به جای میگن مبیوع این شد از اسم مفعول مجرد و اسم المفعول من المذید فی به نقل والقل و اسم مفعول در مزید فی دو اعلال درش رخ میده یکی نقل حرکت یکی قلب عطل فعله اگر در فعلش اعلال رخ داده خب مسلمه که اسم مفعول از مزاره مجهول درست میشه همون موتلاتی که در اعلالهای که در همون اعلالهای که در مزاره مجهول رخ میدادند البته مزاره مجهول رو فکر کنم بحث نکرد در مزاره مجهول همیشه بر وزن یفعلو هست حالا بحثش کرد بله بحثش بله بحثش رد شد می میفرماید که همون اعلال هایی که در مضارع مجهول رخ میدهند در اسم مفعول مزیفی رخ میدن چون اسم مفعول در مزید فیه از مزاره مجهولش درست میشه با این شکل که علامت مزاره رو حس میکنیم و میم مفتوح در ابتداشت میاریم میم مزمون عجاب یو مجهول یو چی بود؟ یجابو پس اسم مفعول یجابو میشه؟ مجاب استقاما یستقیمو یستقیمو معلوم هست مجهولش میشه یستقامو پس اسم مفعول میشه مستقام چون اسم مفعول از مزاره مجهول درست میشه علامت مزاره رو حس میکنیم میم مزمون بجاش میاری تمام شد رفت انقاد، ی انقادو اسم مجهولش میشه دیونقادو پس اسم مفعولش میشه منقاد اختارا ی مجهولشم میشد یختار و یه رو بر میداریم میمزمون میاریم میشد مختار این شد از بحث موتلل یا همون اجوه یا همون ذو که خیلی مختصر کتاب و مفید بحث کرده بود ما هم سعی نکردیم چیزهایی رو اضافه کنیم فقط توضیح دادیم امیدوارم فهمیده باشیم موفق و فیروز باشید